I don't know. مش درست. نمیخواد پشت هم حرفاش. این دختره کیه؟ آوردمتین که بفهمیم تو دوستش. تو اون کسی دیگه عکس رو تو رودیبار ببینه؟ میدونم اصلاً در ذباشت. تو اینم بودی چطور میگه؟ من راضی به این وصلت نیست. بابا میگم میخوام آرش رو ببینم. اصلاً هستو نیستم بابا. خودت اخر کردی آ. خودمون چی کردیم خوش وایسا. اصلا یکی اینجا خیانت. چه نریاش شو. این اعتماد داشت. منو تهدید میکنی. مهریه میخای؟ کلازه بر. دیگه از منم زوشتند تا تو آدر آقا به خدا من کاری ندارم. سامان از بس سوءاستفاده کرد. خودو تو کما. من تو این برنامه سهم دارم. اگه سهممو بریم، ندی ازت شکایت. اون چیزیی که شما جوخورد کردین من تقلب کردم. جووره تو. بعد فرار اون خودش باید تصمیم بگیری که میخواست تو واسه من. حکم قاتل اعدامه. انقد دست دست کرد که خونم از دستمون رفت. این همه مدتی فصاری اینو سر کار گذاشته. اون وقتی تا 100 درصد چیزی ثابت نشه پیدا هر شده از ایران میره. اگه اشبال نداره من ماشین منتظرتون باشم. آه شما کارتون تموم شد بهم زنگ بزنید باشه من اصلا خبردار نبودم، بگه نه عرضه عرض تصدیلت خدمت میرسیدم سلامت باشی. باده هم سرحال نبودم نمیدونم چی شد چجوری برگزار شد همه پسر به اون نازنینی ای وای این اصلا باورم نمیشه این براسر پرجمان اومده باشه آخه چرا؟ بسارکی مالکی آنکی کشتش به زبونم نمیاد بگم خود رحمتش کنه تو از عزت رفیقمون خبری نداری عزت واقعی شریکی تو میگی؟ امه. نه چطور؟ کسی که به پسرم درگیر شده گفته باره از بابات بپرس که چیکار کار کرد یعنیش یه پسری به نام سامان انتقام من رو از پشمان گرفته انتقام چی؟ اند خدا تا که آذار ده موچن من بود خدا هم نمیتونم برای همین میخوام ببینم. بین اون آتش سوزی و موازه و عزت ربطی وجود داره یعنی آدرسی ازش نداری اون موقع موازهش دوی بود باقی سالار بود الان نمیدونن میتونی آدرس شو اصلا گیر بیاری؟ اینجور دفتر نگاه کنه یه سوال ازت دارم. دوست دارم حقیقت رو من بگی. خب بپرس. اینو موقعی میگفتن که این آتش‌سوزی عمدی بوده. البته من واسه تو پشت وایسادم ها. گفتم قاسم علی حرفا نیست. تا الان جایی هیچ حرفی نزدم. ولی الان یه سوال دارم. چی شد که مغازاتش گرفت؟ رفریقمون عزت آتش زد, آتیش زد. آره. اولش هم به منن... بعد که رو از بیمه گرفتیم اون وقت ما غرم بود شده بودیم چکای زیادی داشتیم اوزامون اصلا خوب نبود. تو چه کردی؟ چی کار بیتونستون بکنم سکوت کرد یعنی کسی از اون ماجره آسیب دیده که برای انتقام اومده میمید ما به بچه‌ای قد نمیده. آقا برامی هست؟ دفترش اون اشکارش با شما رابطه. شما کجا می‌رین تو شما نی؟ کنار با شما سقا. کجاست؟ این کمبتنیام راهش کن برو بیرون ولش کن برو بیرون برو بیرون اینجوری چه غلطی میکنی؟ غلط تو می‌کنی که خانم جوامریه تهدید کردی. <تصفيق> چه زودم خبره کرده. معلومه هم دستای خوبی هستی. دست <تصفيق> چی؟ خودش بهم به گفت رقمو آمد گفته. رقم گفته. <تصفيق> <تصفيق> اون روحش هم خبر نداش ما می‌خوام چیکار بکنم؟ کی <تصفيق> باور؟ بعدش هم من پیجمان فهمیده دوتایی زدین کشتینش ببندهن تو من پیجمانو نکشتم پای اونم به این ماجره واز خیلی رود زیاده قاتل فراری امادی اینجا واسه من اول دورم بول دورم میکنی بهت میگم من پیجمانو نکشتم پا چرا فرار میکنی؟ چرا نمیری بگی نکشتیش واسه همه چی علیه منه آها پس کم کنم کن. امداد بگو بچه ها بگیرم ببرم تحویل پلیس بدنت اگه گیر به همه میگم رقموزای من بهت گفتم میگم با تقلب برنده شدی اون وقت تو زندگی دستت به اون زمین نمیرسه اگه یه دفعه دیگه فقط یه دفعه دیگه موزه شادی بشی میرم همه چیو به پلیس میگم بعدشم اصلا برای مهم ایست چطور روزم میفته قبیدی اموز بس این که سرت خیلی شلوغه. منو برسه اونو برگرد من خودم ماشین میگم بعد میکردم نه آقا میمونم برای تو میگردم نب... کاری نداره میگرد خودشه. خودش شه. خودم برمی‌گرفتم ماشین رو کنیم پس چجوری میخوایم برگردیم به سر سال کارت وقتی کارت تموم شد بیار بذارش خونه اگر نباخش آقا اگرم نتونم برگردم برای ماشین می‌گیرم خداحافظ خداحافظ بابا هفت سال پیش فوت شد خدا رحمتش بود شما شریکش بودین؟ آره قاسمم قاسم شریفی چند سال پیش ورشکست شد هستونیست شداد چند ماهی هم افتاد زندان بعدش هم مریض شد و رفت ازش همینجا برامون مونده خدا بیا مادرم همیشه میگو بابا تا وقتی با آقا شریک بود و خوب بود اما وقتی دیگه از هم جدا شدن کاراش خوب پیش نرفت ما هم چند ما قبل از اینجا از هم جدا بشیم به خلص خوردیم بابا آره اون سوزی که بعد اتفاقی بود هرچند بیمه به دادمون رسید اما دیگه چی مثل قبل نشد حالا چی شد آقا سم یاد ما افتادیم راستش تازگیه های اتفاقی تو زندگی افتاده که میخوام ربطش رو با گذشته ها پیدا کنم برا همینم به وجود خدا بیاموز پدر از نشد من هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم سلامت باشی بگم تازگیه ها کسی مزاحم خودت یا خون خونوادت نشده نه چطور؟ کسی که مثلا از اون سوزی خسارت دیده میشه نه چند ماه پیش یکی رفته سر وقت پساره بعد از این همه سر وقت فاق... پسارم دو کشته شده خیلی متاسفم خدا رو همهدش کنه چرا؟ میخواسته از من انتقام بگیر انتقام از شما ام. شما که جز خوبی کاری نکردین همه خیرتون رو میخوان یا میخوام بدهیشون رو بدم بدهی؟ آره چند پیش یه نفر اومد اینجا اول سراغ بابام رو گرفت بعدش که فهمید فوت شده سراغ شما رو گرفت ازش پرسیدم چیکارش داری؟ گفت بابام بهشون بده کار بوده قبل از مرگ از من خواستی که بدهیشو بدم منم گفتم باید پرسجو کنم چمالاشو گذاشت گفت بهش زنگ بزنم. اسمش چی بود بابا اسمشو یادم نیه. اما اینجا نوشتمش من شنیده بودم ماهی سرا اما مطمئن نبودم از دو سه نفر آمارتون رو گرفتم و بهش گفتم اینا اسمش سامان بود درست شنیدن گفتی سامان آره سامان چی شد آواسم یک یک ایچ. خیلی ممنون بابا. بازم به سر سنه. فیدا چونم اون من آگهی رو کدوم شهرو ثبت کردم بیشتر شیراز و اصفهان بودون چیزی که داشتم نگاه می‌کردم از شهرستان شمالی هم اما گرگان و تنکابانو داشتیم خیلی آره اصفهانو دیدم خیلی میشه یه لیست کامل از شماره تلفن و این آدرس بدید به کارم دارم الان به از آدرس و شماره تلفنشو برام من بدیم. برتون آماده کردم جمعه هم ستاره زدم ده دقیقه دیگه میام تو اتاق خیلی خوب فهمانید یعنی؟ اون چیزی که گفتید الان میام دیگه اون چیزی که گفتی برش بدم اتاق باشه عجله ندارم مرسی مرسی چی شده چی دیدی بهت گفتم رفته پنجا میلیون از حساب مشترک پول برداشه بهت گفتم حساب خالی بکنم نداشتی هرچی هم زنگ میزنم جواب نمیده من دیگه چه اعتمادی بهش داشته باشم ما اصلا نمیدونم چه مشکلی پیش اومده که مشبورش... هیچی برم قابل قابلی سونا! هیچی! شهر ایکی که بدون رضایت اون بره پول برداره به درد نمیخوره! خیلی خب باشه اینقدر تو نرو. همه چی اینطوره میرزی به داری ازش دفاع میکنی که پوسش داری از همه اولم گفتم رابطه اتون وارد کار میشه و همه چی رو به هم میریزه رامین جان من فقط میگم آروم باش بفهمی برای چی این کارو کرده یه نفر غیبم بود همینو میگفته یا نه چونکه آرشه داری کتامی های من از اول سعی کردم مسائل ما وارد کار نشه خودت هم میدونی باشه باشه الان شما به من بگو که من با این آقای آرش جوان مردی چی کار کنم بگو دیگه نمیدون من میدونم من دیگه هیچ اعتمادی به این آقا ندارم حساب مشترک رو خالی می‌کنم یه حساب جدید به اسم خودم باز می‌کنم ناراحتم اینجان خب اینم کار درسته نیست درست نیست این آقا بدون اجازه رفته 50 میلیون از حساب مشترک پول برداشته دیگه هر رو مسئله مالی نداره فکر که از دوستام دوچهار مشکل شده میخوام به اون کمک کنم آقا ساله شما سمیمی دوست آراشین از زمان دانشگاه تا الان. چه اتفاقی بر آرش افتاده کدوم دوستش پول میخواسته که آرش همچه کاری کرده حقیقتش اینه که منم متوجه شدم که آرش مشکل داره ولی واقعا دقیقا نمیدونم مشکلش چیه منم گیت شدم چه مشکلی پیش اومده که اینجوری آرش رو به هم رفتار آرش کلن عوض شده و به من بگه شاید انتخابمون غلط بوده ما به درد هم نمیخوریم بعد میگه با هم حرف زنیم رفتار از حساب مشترک پول برداشته جا تلفن منو من رامینو نمیده من اصلا نمیدونم دیگه باید چی کار کنم اینطوری شرکت هم میریزه به هم از یه طرف باید کنار آرش باشم از یه طرف هم شاکی حقم داره خلاصم شرکت به جهنم مهم آرش که معلسه نمیدونم چشه این وسطیو سر کله شاکری هم پیداش نه نه شما اصلا نه اسمشونو ایشونو نه بهش فکر کن اصلا بهشون نداره من نگرانم ازتون خواستم که خود زحمت کنید اگه مشکلی هم برای آرش پیش اومده باشه ان حل میشه منم سعی میکنم بفهمم چیه که بتونم بهش کمک کنم شما این چند وقته اگر دیدین آرش خود حالش خوب نیست و از صدیه بذارین بارد خودش بشه شده که مشکل حل میشه فقط چیزی که من مطمئنم اینه که آرش واقعا شما رو دوست داره و چیزی که مطمئنم اینه که شما حتی یه لحظه هم نسبت به حس آرش به خودتون شک نکن چه ها میدونیم چه اتفاقی افتاده من مطمئنم خب به منم بگیم نگران نباشین شما خب من بدونم چه اتفاقی افتاده شب کاری از دستم بر بیاد خب من تصفیه از دسته هیچی کاری برن نمیم آقا ساله آی فاضلی بایتون کار دارم شبه علمان شبه پس میدونیم چه اتفاقی افتاده دیگه؟ ببخش من کارم آگاه باشم. آقای شیخ حبیبی، آقای شیخ حبیبی، بیایید نمی من آقای شیخ حبیبی، بیایید نمی آییم. آقای شیخ حبیبی، بیایید نمی کاری واجبتن همین الان باید ببینمه هر چی از سی بکنه من خودم بیام خدا اینجا چرا دار گذاشتی؟ چون؟ اون مقلی با این یارو قرار برده همین افتی از حساب مشترک پول برداشتی رونا آقایت گفت عجبا او چی کار کنه بدبخه؟ از تو به رو جواب ندادی؟ صالح من تو بد مخبصه گیر افتادم تو این شغله اینو من میفهمم ولی میدونم که فقط داره خود بدبخت بدبخ میکنی بدبختر از این؟ من قاتلم میفهمی؟ حالا میری سطحا میدی به یارو فردا دوباره می زره پول میخواد. نمی کنه این کارو نمیکنه کجا میدونی تا کیفو نده پولو بهش نمی دنه. ازم به فرضم کیفو گرفتی بعدش میقاد چیکار کنی؟ چهجوری میتونی برگی سر زندگی تو انگار نه انگار وضعیت الان انگار نه انگاره آره منم همینو میگم دیگه برو خود تو معرفی کن از آویژون دیوونت میکنه ها تا کی میتونی اینطوری زندگی کنی نمیدوننم فقط میدونم اگه بگیردم کارم تمومه دلاره دیگه آره خیاله تخت من چیک میکینا قبول نمیکنم. نه بابا گفتم که خیاله راحت. ما بقیش از کجا بردی بالاخره من هم یه, یه تجارت سرمون میشه نولکالا از همه یارو که به زنگ زدیم. آره باش یه معامله یک کردم چه تجارت یه که تهدیدش میکردی میخواست پولمونه نده مجبور شدم یه کچو به خیلی کنیم بریم باشه شما بار تو بانگا با بود کواهشو بکنن من خودم میام. من میرم ولی تا پولو نه یعنی هیچ کاری نمی و به باشی منو دارم میام. چرا قدی؟ 1 دلار گرفتم تول کشیدم. حالا میام یه کوچه فاصله دارم. بجوم. راشی زکواست. دیدی زکواست؟ راش نکنین. کارو داری اشتباه میکنی. آدمی دون دارم چی خواهم. خدا نمی دونید. تو میخاست چرا من میرم بالای دار؟ آره اینو میخوای؟ جون دخترم بری بهش پول بدی. همه چیو به مادرت میگم این کارو بکن ببین به مادرت میگم یا نه ته خواهش میکنم یه دست جوابوش نداسم کیفو می آگاهی نمی بررش رو از خیلی پولش نمیگذری دست به سرش کن خور حالا اگه بره پیش پلیس چی؟ نمیره میریم باشش حرف میزنی و زمان می خریم من خودم باهت میاد. نه خودم برم بهتره خ تو برم می کنه فکر میکنه آدم برش ف. آش به تماس تو کن نرم یا هرتی که من سرکار گذاشتی یا پول من الان برمیدانی میاری یا من میدونم با چی کار کنم با میام احمق لحظه هایتان را مملوه از عطر آیات الهی کنید با اپلیکیشن ایران صدا تلاوت های با صدای قاریان برجسته ترجمه فارسی به همراه آموزش حقص، روخانی و تجویر اپلیکیشن ایران صدا را از ایران صدا دریافت کنید. ساعت من اینجا کاشتی راحت کن بیاد بگم پولو بده الان نمیتونه ببینم تو خرگی رو فکر من نیم فهم چی تو کلته داری وقت گوش که فراد کنی یاره خودم جور نمیشه <سطور> دروغ میگی یه لخشه تو کلته هست نمیرم چه پولیس مر کن این کارو بعد مهلت دادم دیگه هم نمیدم اگه بری پیش پولیس دیگه به پولت نمیرسی تو ما اگه پول نمیخوایی خوی بگم صبر کنم چقدر صبر کنم که این اینجوری سرکار بذاری پولم جور شه بدخبر صبح گفتی جوره جور بود قرار بود که بهم پول بده زد زیر قولش به محصنی که بایم پول بده بدخبر میدم قول میدم آره منم باور کرد که اینمه صبر کردی خوب یکم دیگه هم روش باور کن پول جور شه خبر میدم دیگه یه محلت دیگه بدمیدم ولی به جون بچه هم آخری شد سه روز سه روز وقت داری پولو جفتو جور کنی اگه رو حرف بای نزدی دوز و کلک سرهم کنی قید پولو میزنم اون رمش پایز مهمید نه چی شده؟ نمیدونی؟ چرا دیروز تقریبم کردی؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ میگم چرا دیروز تقریبم کردی؟ من باید شاکی باشم یا تو؟ مگه نگفتم دیگه باهات حرف نزن. برای چی رفتی دیدنش ها؟ سامان قاتل نیست. حالا یا هست یا نیست شادی. من کاری به اینا ندارم. شما نباید دیگه با هم کاری داشته باشیم. من به اونم گفتم. چرا وقتی میدونم بی‌گناه نباید کاری به کارش داشته باشم؟ من کاری به بی‌گناهیش ندارم. اون بازیت داده به همشادی آدمی نمیشه اعتماد کرد پشیمونه پشیمونه خب. به همین راحتی خب باید چیکار کنه هیچی هیچ‌چیراشو بگیره بره به زندگی خودش دورو برای تو هم دیگه پیداش نشه ما همو دوست داریم تو چرا حالیت نیست سامان تحت تعقیبه بفهم خب باشه ما که می‌دونیم بی‌گناهه ما آره دیگه خودم بهش گفتی من میدونم تو قاتل نیستی من از کجا بدونم من چه میدونم تو بهش گفتی من همینطوری گفتم الان مزنون اصلی قتل پشمان اونه معلوم نیست تا کی پشت این ماجره گیره شادی؟ من دوستش دارم تنهاش نمیذارم حرف نباشه دیگه بهت گفتم دیگه حق ندارین هم دیگه رو ببینین خوش آمدی نمیم جوره خوب نمیم آزیل چای روشن کنم برتم چایی بیارم تازه دم کرده. اگه خواستی باست خودتم بیار چشم حالت خوبه بابا نه خوب نیستم دو طور برسن اجازه سفر نمید خب بهتر بابا تو مادری باید صبر و حسنه داشته باشی عزیزم حالا فرض کن اومدی اینجا میخوای چیکار کنی؟ یعنی چی میخوای بیا چیکار من انو سر خاک پشمان نرفت میری بابا عجله نکن سر مزارشم میری نه بابا من دیگه دلم تاقت نداره به مهران گفتم برام بیلیت بگیره بیام کار بدی کردی بابا تو بچه شیر خوره داری باید موازه خودتو بچت باش شیرشو براش میذارم خوهر مهران میاد پیشش من نصف روزه میام برمیگرد میام تهران یه راست میرم سر مزارش دادوشمو و برمیکرم کاری نداری بابا خدا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> به کم تایی شده صداش نگاهاش خندش شبا چشمم به این دره که بابشه و بچه بیاد تو خم بزنه و بگی سلام بابا من این حس شما رو خیلی خوب می‌فهمم یه پسر دوازده سیزده ساله بودم که پدرم رو حد دست دادم نمی‌خواستم باور کنم اصلا قبول نمی‌کردم همش فکر می‌کردم دروغه، الان برمیگرده. چند سال طول کشید تا اینکه تونستم کم کم باور کنم که دیگه بر نمیگرده. ولی همیشه حسش می‌کنم بعضی وقتا فکر میکنم هست داره نگام میکنن پس من خیالاتی نشده ماری خولیا نگرد چون چون منم هم حس و نسبت بچم داره آره آقا کاری داشتین چیزی اگه لازم داری من برم بگیرم بیارم براتون اجمان که بود وقتی من میخواستم برم همون کبکم هم میکرد خب من میبرم اتون باشیم بریم همون نه نه تو هم اینجا باشی من اگه به چیزی احتیاج داشتم صداد میزنم نه قربون اتون میبرم اتون. یه موقع میخونی زمین خودایی نکرده نه موازمم هم. تو همینجا باش لازم بود صداد میکنم چشم بفرمین چایتون امید کنی ایل برمیگی بابا این شاملا عروسیت جبرانش کنه اونتونم خوش کنیم سرمانه خوریت کجاست توی اتاق پشمانه خب بریم هم خب اونجا بفهم بفهم کجا سشوار آقا باید اونجا باشه باشه سشوار بفهم خونی داری؟ مزایم نیست از چرا؟ جوابشو نمیدی قبل دیدم که زای خورده جوابشو می بینی حواسم بهت هست عاشقی؟ دیگه نه نمیشه که یه دیوه عاشق بشی یه دقیقه بعدش نباشی پر حال دیگه تموم شد چرا؟ به دردم هم نمیخوای از چه جهت؟ خانواده همون هم نمیان مم. پدرش صاف ثروت بابا؟ بد دوستش داری؟ به این بابا اگه دوستش داری باب از نکش معلومه اونم دوست داره که بهت زای میزنه ولی من موقعیت ازدواج ندارم موقعیت انزولت چیه؟ کلن دیگه یعنی مثلا پول و خونه و ماشین و این حرفا شرایط سخت شده بابا شرایط همیشه سخت بوده بابا دورون ما سخت بود به <تصفيق> خاطر این چیزو پاپس نکشت ناگه اینکه دلیل چیز دیگه ای باشه که من از اون خبرم منو میبری مائسارا ما خوش شرمنده من بعد برم جایی نمی رسم ببخشید حبرت بره به کارت برس این ماشین من بگیر شرمنده چشم کو باکنم کم بریم تو صاب مل لباسه باشه بزن <تصالحان> <تصالحان> <تصالحان> یه نیچی واسه خونه مشتری پیدا شده من یک قردنشو خونه رو برگردونی چرا؟ قرار شد ولی به شرط اینکه پولت آماده باشه پول من آماده است این چجور آماده ای که هی امروز فردا میکنی گیری تو کارم تو یکی دورزه حل میشه گیره کارت تهیانان ربط به این پسره آرش داره کی؟ خواهی تو به اون را دیدم با هم همدیگه روبارو بانگادشت حرف میزدی آ اون پسره رو میگیی مشکلت با چیه؟ مشکلی ندارم ولی معلوم بود داشت و هم جهر رو بحث میکردید یه اختلاف توی این معامله بود حل میشه چجور ای که اسم طرفت رو نمیدونستی؟ چی شده بعد اینقدر مهم شده میشناسیش؟ یه جورهی چه معاملهی باش کردی؟ من با اون معاملهی نکردم با یه نفر دیگه چکه اینو داده؟ خاطر امیرم نمیشناختمش پس ازای چیک داریم آره چیک دارم یه پیشنهادی واسهت دارم چی؟ که اون پسره رو با هرچی پول جمع کردی ازت میگیرم خونه رو بهت برمیگرد دنبال درده سری این پسره باید قلقه من خودم ترسوندمش یک روز وقت بده خودم پولش بکنم من فرصت ندارم پول لازمم اگه مشتری دست به نقدن پیدا بشه خونه رو میدم بره چونه مادرت بیخیال کامیار زنم داره بومی بره خونه رو فروختم دلار خریدم چند بار سوال پرسیده هی hey, پیچوندنش اگه میخوای آب روت تو نره چک بده اون رو تعویض بگیر چک این پسرا میدم پاس نمیشه خودش داستان میشه یکی دو روز وقت بده گفتم که خودم پولش میکنم مواز خودت گفتم بعد نگی بچه‌م علام هوامو نداشتش من هم بردیرام جایی دختره آخر کار خودشو کرد با این کاری که آرش کرد دیگه بهش اطمینان ندارم شاید این دختری به نفسی راست میگه شاید کل اپا اون ترایی کرده آرش دروغ نمیگه از کجا مطمئنی؟ خب میشن سمش میشن سمش با اتوانان عصبانی داره اینطوری حرف میزنی. نباشم خبری ازش شده؟ این حداقل به تو باید توضیح بده که چرا پول رو برداشته. میگه؟ حتما. کی؟ تلفنش هم جواب نمیده. یکی از دوستاش حرف زده میگه این مشکلی برای اوراش پیش اومده. چه مشکلی؟ باور کن نمیدونم. رونا اون آدم قرارش شوهر تو باشه چرا باید از تو مخفی کنه؟ سلام، سلام، علیکم السلام، چطوری؟ سلام پس چی اومدی اینجا سلام جواب نداره گفتم چی میخوای اینجا چیزی نمیخوام گفتم یه سری به تو شاید کمکی از دستم بر بیاد بگه شما قرار نبود فقط پول بذاری و کاری به کار شرکت نداشته باشی یعنی مشکلتون که حل شد دیگه با من کاری نداری مشکلمون حل شد کدوم مشکلمون حل شد واقعا باید توضیح بدم دختره میخواست شکایت کنه من منصرفش کردم <تصفح> این اسمش انصرافه شکایت کرده بله شما لازم نیست کمک بکن اصلا نمیخواد بیای اینجا من خودم گزارش سود زیان به شما میدم باید باش حرف لازم نکردی چیزی میگه بدتر میشه رامین تو هنوز با من اعتماد نداری باید داشته باشم رفتی راضیش بکنی ازمون شکایت کرده منو یکی دو روز حلش میکنم می نمیخواد صحبت بکنی اصلا نمیخواد هیچ کاری بکنی درستش بکن اصلا <متخلا> کمک نمیخوام. دیگه نبود تموم بشه. دقیقاً چه بود تموم خیلی پست. من هیچچی به ذهنم نمیریسه. دهنم دیو نمیشه فکرم شاید بین شما مسئله پیش اومده. نمیفهمم زندگی من به رونا چه ربطی داره؟ شما قرار من ازدواج کنیم کسی که سالها دوستش داشتی همین رو از دست زد. که <ممتخلا> زادتش کجاست؟ یه عمر باکینم خسارت حضور کردی؟ چرا با چمو کشتی؟ تو یا تاریکی آه در جریان بود. زل زدم به آسمون عینکم دودی شد با صدای زنگ در یهو بارون آرید دستای خون پر از گل داوودی شد ما از راه رسید روی رب علن شاز دکمه های قلب من دون دون شول شدم گفتم این یه معجزه است خیر شد به آسمان همه هست تو رها دون دون گل شدم مهربونی ایش نزنی نی ای آخریم دیگه این جورچینی ایش مهرابونی ایش نزنی نی ای آخریم دیگه این جورچینی ایش نخ باد بادکم و یه جوری با کرد که تا هر جا خواستم بتونم پر بکشم یه جوری تشنم کرد که میشد دریا را مثل یه آب یه نفس سر بکشم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 مهربونی ای یش نازنینی ای آخرین تیکه